17 چرخهای صنعت اقتصاد نوین با امید ما به آینده و اشتیاق کاپیتالیست ها برای سرمایه گذاری مجدد سودشان در تولید رشد مییابد اما این کافی نیست شکوفایی اقتصادی به انرژی و مواد خام هم نیاز دارد و اینها محدودند وقتی یا اگر این منابع تمام شوند تمامی نظام فرو خواهد ریخت اما شواهد به دست آمده از گذشته نشان می دهد که منابع تنها در عالم نظر محدودند. تناقض در این است که به موازات مصرف انفجارا میز مواد خام و انرژی تایی دهه اخیر مقدار موجود منابع برای بهرهبرداری برداری ما هم در حقیقت افزایش یافته. هرگاه کمبودی در زمینه ای رشد اقتصادی را با خطر کنج شدن مواجه کرده، سرمایهگذاری ها به سوی تحقیقات علمی و تکنولوژیک روان شده. این تحقیقات نه تنها ما را همواره به راه های موثرتر برای بهرهبرداری از منابع موجود رسانده، بلکه به انبع کاملا جدیدی از انرژی و مواد خام هم هدایت کرده. صنعت وسایل نقلیه یک نمونه است. انسان طی 300 سال اخیر میلیاردها وسیله نقلیه ساخته از گاری و چرخ دستی گرفته تا قطار، خودرو، جت‌های مافوق صوت و سفینه های فضایی. میشد انتظار داشت که چنین تلاش شگرفی منجر به اتمام انرژی و منابع خام موجود برای تولید وسایل نقلیه شود و حالا کفگیر به ته دیک خورده باشد. اما قضیه برعکس است. در حالی که در سال 1700 صنعت جهانی وسایل نقلیه اساساً از چوب و آهن استفاده می کرد، امروز طیف انبوهی از مواد جدید مثل پلاستیک، کاوچو، آلمنیوم و تیتانیوم را در اختیار گرفته که پیشینیان حتی از وجودشان هم اطلاعی نداشتند. در 1700 گاری ها عمدتا با نیروی ازولانی نجاران و آهنگران ساخته می شد، اما امروز انرژی ماشین‌آلات کارخانه‌های تویوتا و بوئینگ توسط موتورهای نفت‌سوز و نیروگاه‌های هسته‌ای تأمین می‌شود. انقلاب مشابهی تقریباً در تمامی های صنعت به وقوع پیوسته. ما این را انقلاب صنعتی می‌نامیم. هزاران سال قبل از انقلاب صنعتی، انسان‌ها می‌دانستند که چطور می‌توان از طیف ای از منابع انرژی استفاده کرد. آنها برای ذوب آهن، گرم کردن خانه و پختن غذا چوب بیسو کشتی بادبانی نیروی باد را مهار کرد تا با آن به اطراف سفر کنند و آسیابها جریان آب رودها را به کار می گرفتند تا غلات آسیا کنند. اما همه اینها محدودیت‌ها و مشکلات خود را داشت. درخت همه جا در دسترس نبود. باد وقتی به وجود آن نیاز بود نمی وزید. نیروی آب فقط برای کسانی قابل استفاده بود که در کنار رود زندگی می کردند. مشکل باز هم بزرگتر این بود که کسی نمی دانست چطور می توانی یک نوع از انرژی را به نوع دیگر تبدیل کرد. آنها می توانستند حرکت باد و آب را مهار کنند تا بادبانی کنند و سنگ آسیاب را به حرکت درآورند، اما نمی توانستند آب را گرم کنند و یا آهن را ذوب کنند. برعکس ده می از انرژی گرمایی تولید شده توسط سوخت چوب برای به حرکت دراوردن سنگ آسیاب استفاده کنند. انسان ها فقط یک دستگاه در اختیار داشتند که می این تبدیل انرژی را انجام دهد و آن بدنشان بود. بدن انسان و دیگر حیوانات در روند طبیعی سوخت و ساز خود سختهای طبیعی یعنی غذا را مصرف می کنند و انرژی آزاد شده از آن را برای حرکت ازولات به کار می گیرد. مرد و زن و جانور می توانستند با مصرف قلات و گوشت، سوزاندن کربوهیدرات و چربی از انرژی آزاد شده استفاده کنند تا گاری دستی را به حرکت درآورند یا خیش را با خود بکشند. از آنجا که بدن انسان و حیوانات تنها وسیله تبدیل انرژی موجود بود نیروی اعالانی کلید تقریبا تمامی فعالیت بشری بود. ازالات انسانی، گاری و خانه میساخت اعذات گاو مزرعه را شخ میزد و اعلات اسب کالا جابجا جا می کرد آن انرژی که این دستگاه های زنده را به کار می برد، نهایتاً از یک منبع واحد سرچشمه می و آن گیاه بود. گیاهان انرژی خود را از خورشید می گرفتند و در فرایند فوتوسنتز انرژی خورشیدی را می گرفتند و آن را به ترکیبات عالی و دل تقریبا هر آنچه انسان در طول تاریخ انجام داده از انرژی خورشید گرفته شده که در گیاهان ذخیره و به نیروی عضلات تبدیل میشد در نتیجه تاریخ انسانی تحت تسلط دو چرخه اصلی بود. چرخه های رشد نباتات و چرخه های انرژی خوشیدی، روز و شب، تابستان و زمستان. وقتی نور خورشید کم بود و مزارع گندم هنوز سبز بودند، انسان انرژی کمی داشت. انبار قله خالی بود، معمورین مالیاتی بیکار بودند، سربازان از حرکت و جنگیدن آجز بودند و شاهان خواهان صلح بودند. اما وقتی که خورشید میتابید و گندم ها شکوفا می شدند، کشاورزان محصولات را درو می کردند و انبارها را پر می کردند. معمورین مالیاتی برای گرفتن مالیات به تکاپو میافتادند سربازان عزلات خود را به حرکت در درمی‌آوردند و شمشیرهایشان را تیز می‌کردند. شاهان جلسات شوراییشان را برپا می‌کردند و لشکرکشی‌های بعدی را تدارک میدیدند خلاصه همه توسط انرژی خورشید به حرکت در می‌آمدند که در گندم، برنج و سیبزمینی جذب و ذخیره می‌شد. راز آشپزخانه انسان تی این هزاره های طولانی هر روزه شاهد ابداعات مهمی در تاریخ تولید انرژی بوده اما توجهی به آن نداشته هر بار که خانم خانه یا خدمتکار کتری آب را برای دم کردن چای و یا دیگ پراسیب زمینی را روی اجاق میگذاشت آن ابداع در مقابل چشمانش بود لحظه‌ای که آب جوش می‌آمد در کتری یا دیگ تکان می‌خورد گرما به حرکت تبدیل شده بود اما تکان خوردن در دیگ باعث رنجش بود به خصوص وقتی که شما فراموش میکردید دیگ را از روی اجاق بردارید و دیگ سر میرفت. اما هیچ کس این نیروی بالقوه واقعی را نمیدید. یک پیشرفت جزئی در تبدیل گرما به حرکت به دنبال اختراع باروت در چین در قرن نهم نه رخ داد در آغاز فکر استفاده از باروت برای پرتاب سلاح‌های پرتابی به قدری غیرقابل تصور بود که طی قرن‌ها از آن بیشتر برای تولید بمب‌های آتشزا استفاده می‌شد اما سرانجام شاید بعد از اینکه یک متخصص بمب هنگام له کردن باروت در یک هاونگ متوجه پرتاب شدن ناگهانی دسته هاونگ به طرفی شد سلاح گرم به وجود آمد تقریبا 600 سال طول کشید تا اختراع باروت به شکل گیری یک توپخانه کارآمد انجامید. حتی پس از آن، باز فکر تبدیل گرما به حرکت کماکان چنان دور از این بود که سه قرن دیگر هم طول کشید تا اینکه انسان دستگاه دیگری اختراع کند، گرما را برای به حرکت در آوردن چیزها به کار بگیرد. تکنولوژی جدید در معدن زغال سنگ بریتانیا متولد شد. به همان نسبت که جمعیت بریتانیا افزایش می‌یافت، درختان قطع میشدند تا سوخت اقتصاد در حال رشد تأمین شود و جا برای ساختن خانه و مزرعه باز شود. بریتانیا با کمبود روزافزون هیزم مواجه شد. استفاده از زغال سنگ به عنوان جانشین آغاز شد. بسیاری از رگه‌های زغال سنگ در مناطق آبی قرار داشتند و سیل مانع از این میشد تا کارگران معدن بتوانند به های زیرین معدن دسترسی یابند. چاره‌جویی آسان نبود. در حوالی سال 1700، صدایی عجیب در چاهای معدن بریتانیا تنین انداخت. این صدا که انقلاب صنعتی را بشارت میداد در ابتدا نامحسوس بود اما برای هر دههی که میگذشت بلندتر و بلندتر میشد تا اینکه تمام دنیا از این صدای گوشخراش به لرز درآمد. این صدا از یک ماشین بخار بیرون میآمد. ماشین های بخار انواع بسیار دارند اما همه آنها در یک ویژگی مشترکند. از نوعی سوخت مثل زغال سنگ برای گرم کردن و جوش آوردن آب استفاده می شود که تولید بخار می کند. وقتی بخار منبسط می شود، بر پیستون فشار وارد می کند و آن را به حرکت در می آورد. حرکت پیستون هر چرا که به آن متصل است به حرکت در می آورد. اینجا گرما به حرکت تبدیل شده. در مادن زغال سنگ بریتانیا در قرن هجدهم پیستون به پمپی بود که آب را از ته گودال معدن بیرون می‌کشید. ابتدایی ترین موتورها بسیار ناکارآمد بودند. برای کشیدن مقدار کمی آب، نیاز به سوزاندن مقدار زیادی زغال سنگ بود. اما زغال سنگ فراوانی در معادن وجود داشت و در دسترس بود، بنابراین کسی به این موضوع اهمیتی نمیداد. تای دهه دهههای بعدی کارآفرینان بریتانیایی موتورهای بخار کارآمدتری ساختند و آنها را از معادن خارج کردند و به دستگاههای نساجی و پمبزنی به کردند این امر تاثیر انقلابی بر تولیدات نساجی گذاشت و امکان تولید پارچههای ارزان در مقیاس عظیم را فراهم کرد بریتانیا در چشم به هم زدنی به یک کارگاه جهانی بدل شد اما تاثیر مهمتر خارج کردن موتور بخار از معادن شکستن یک سد ذهنی بود. اگر میشد از سوزاندن زغال سنگ برای به حرکت در دستگاه دستگاه‌های نساجی استفاده کرد، پس چرا از آن برای به حرکت در دیگر چیزها استفاده نکنند مثل وسایل نقلیه؟ در سال 1825 یک مهندس بریتانیایی موتور بخار را به یک رشته از واگن های معدن پر از زغال سنگ وصل کرد. این موتور واگن ها را روی ریل هایی به طول 20 کیلومتر از معدنی میکشاند و به نزدیکترین بندر میبرد. این اولین لوکوموتیو بخار تاریخ بود. اگر می توان از بخار برای حمل و نقل زغال سنگ استفاده کرد چرا از آن برای حمل و نقل دیگر کالاها استفاده نشود؟ و چرا برای حمل و نقل انسان ها به کار نرود؟ در پانزده سپتامبر 1830، اولین خط آهن تجاری شروع به کار کرد که لیورپول را به منچستر وصل میکرد. این قطارها با همان نیروی بخاری کار میکردند که قبلا آب را بالا میکشید و دستگاه های بافندگی را به حرکت در آورد. بیست سال بعد، بریتانیا صاحب ده ها کیلومتر خط آهن شد. مردم از آن به بعد شیفته این تفکر شدند که ماشین‌ها و موتورها می توانند برای تبدیل یک نوع انرژی به نوع دیگر مورد استفاده قرار گیرند. هر نوع از انرژی در هر کجای دنیا می توانست برای هر زمینه مورد نیازی مهار شود، فقط اگر می دستگاه مناسبی را برای آن اختراع کنیم. برای مثال وقتی فیزیکدانان پی بردند که انرژی عظیمی در اتمها ذخیره شده، بلافاصله به فکر افتادند که این انرژی را آزاد کنند و از آن برای به وجود آوردن برق، نیروی زیردریایی و نابودی شهرها استفاده کنند. از زمانی که کیمیاگران چینی باروت را کشف کردند تا زمانی که های ترکی دیوارهای قسطنطنیه را با خاک یکسان کردند 600 سال طول کشید. اما از لحظه ای که آنشتاین مشخص کرد که هر جرمی می تواند به انرژی تبدیل شود، ای مساوی MC2 تا لحظه ای که بمب اتم، هیروشیما و ناکازاکی را با خاک اکسان کرد و نیروگاه های در سراسر جهان برپا شد، فقط چهل سال طول کشید. دیگر کشف بزرگ موتور احتراق داخلی بود که در زمانی بیش از یک نسل، حمل و نقل انسان را دچار تحولی انقلابی کرد و نفت را به یک هرمه قدرت سیاسی بدل کرد. نفت از هزاران سال قبل شناخته شده بود و برای آيق کردن پشت بام و چرب کردن محور چرخها از آن استفاده میشد. اما تا همین یک قرن گذشته کسی نمی دانست که نفت زمینه استفاده دیگری هم می تواند داشته باشد فکر جنگ و خونریزی برای نفت آن زمان مزهک به نظر می آمد شما می توانستید برای سرزمین، طلا، فلفل یا برده جنگ راه بیاندازید اما نه برای نفت برق از همه اینها هم تاثیرگذارتر بود دو قرن قبل برق هیچ نقشی در اقتصاد ایفانه می کرد و از آن حد اکثر برای آزمایشات علمی عجیب و ترفندهای سطحی در چشم بندی استفاده می شد. مجموعی از اختراعات برق را به یک چراغ جادوی جهانی بدل کرد. ما تلنگوری با انگشت خود می زنیم و کتابها چاپ می شوند، دوخته می شوند، سبزیجات ما تازه نگه داشته می شوند. بستنی درست می شود، غذا پخته می شود، مجرمین اعدام می شوند، افکار ما سفت می شود، لبخند ما زفت می شود، شبهای ما روشن می شوند و برنامه های بیشمار تلویزیونی ما را سرگرم می کنند. تعداد کمی از ما می توانیم بفهمیم که برق چطور همه این کارها را انجام می دهد اما تعداد کمتری می توانند یک زندگی بدون برق را تصور کنند. اقیانوسی از انرژی انقلاب صنعتی در اساس خود انقلابی در تبدیل انرژی بود. این انقلاب بارها و بارها نشان داد که برای انسان هیچ مرزی برای انرژی وجود ندارد یا دقیقتر اینکه تنها محدودیت برای دستیابی به انرژی را نادانی ما ایجاد می کند. ما در طی هر چند دهه منبع انرژی جدیدی کشف می‌کنیم به گونه ای که مجموع کل انرژی در دسترس همواره افزایش می‌یابد. چرا مردم نگرانند که انرژی در حال تمام شدن است؟ چرا اختار می می‌کنند که اگر سوخت فسیلی تمام شود فاجعه رخ خواهد داد؟ دنیا دچار فقر انرژی نیست. این فقر در دانش لازم ما برای مهار و تبدیل انرژی متناسب نیازهایمان است مقدار انرژی ذخیره شده در تمام سوخت فسیلی زمین در مقایسه با مقدار آن انرژی که خورشید به طور مجانی و روزانه در اختیار ما میگذارد ناچیز است تنها مقدار بسیار ناچیزی از انرژی خورشید به ما میرسد، اما این میزان برابر است با 3.766.800 اگزا جول انرژی در هر سال. ژول واحد انرژی در نظام متری است و تقریبا برابر با نیروی لازم، برای بلند کردن یک سیب کوچک تا ارتفاع تقریبا یک متر است. یک اگزا یک میلیارد میلیارد جول است که معادل نیروی برای بلند کردن تعداد بسیار زیادی سیب است. تمام نباتات جهان در حدود سه هزار جول از انرژی خورشیدی را تهیه فرایند فوتوسندس جذب می کنند. تمام فعالیت‌های انسانی و صنعتی بر روی هم در حدود 500 اگزاژول مصرف می‌کنند که برابر با آن میزان از انرژی است که زمین فقط طی 90 دقیقه از خورشید دریافت می‌کند و این فقط انرژی خورشید است علاوه بر این در اطراف ما منابع بیشماری از انواع انرژی وجود دارند مثل انرژی هسته‌ای و انرژی جاذبه این دومی بیشتر مربوط به قدرت جزر و مد اقیانوس است که بر اثر نیروی ماه بر زمین ایجاد می شود. قبل از انقلاب صنعتی بازار انرژی انسانی تقریباً به طور کامل وابسته به گیاهان بود. انسانها در امتداد یک منبع انرژی سبز زندگی می کردند که حامل سه هزار اگزاجول انرژی در سال بود و تلاش بر این بود تا این انرژی در حد توان استخراج شود. اما در رابطه با میزان استفاده از این انرژی محدودیت آشکاری وجود داشت. طی انقلاب صنعتی پی بردیم که در اقیانوس بیکرانی از انرژی به سر می بریم که بالقوه نیروی برابر با میلیاردها و میلیاردها اگزاژول را در خود دارد. تنها چیزی که نیاز داریم اختراع افزارهای بهتر برای استخراج این انرژی است. آموختن مهارت در مهار کردن و تبدیل مؤثر انرژی، مشکلات دیگری مثل کمبود مواد خام را که بر سر راه رشد اقتصادی بود حل کرد. وقتی انسان ها توانستند مقادیر عظیمی از انرژی ارزان را مهار کنند، توانستند استخراج زخایر مواد خامی را آغاز کنند که تا قبل از آن دور از دسترس مینمود. مثل استخراج آهن در زمین های بایر سیبری یا انتقال مواد خام از مناطقی حتی دوردست تر از آن مثل فراهم کردن پشم استرالیا برای صنایع نساجی بریتانیا. همزمان پیشرفت های علمی انسان را قادر ساخت تا مواد خام کاملا جدیدی مثل پلاستیک را اختراع کند و مواد طبیعی قبلا ناشناخته مثل سیلیکون و آلمینیوم را کشف کند. شیمیدانان آلومینیوم را در دهه 1820 کشف کردند اما جدا کردن فلز از سنگ معدن بسیار دشوار و پر خرج بود طی مدت‌های طولانی آلومینیوم بسیار گرانتر از طلا بود در دهه 1860 امپراتور فرانسه ناپلئون سوم دستور می‌داد برای مهمانان بسیار مهمش قاشق و چنگال آلومینیومی سر میز بگذارند مهمان های کم اهمیتتر ناچار بودند تا با قاشق و چنگال های تلا غذا بخورند. اما شیمیدانان در انتهای قرن 19 راهی را برای استخراج مقادیر عظیم آلمینیوم ارزان کشف کردند و تولید جاری جهانی به سی میلیون تن در سال رسید. ناپل سوم شگفت زده میشد اگر میشنید شنید که نوادگان توده های تحت سلطه اش ساندویش خود را در ورقه های ارزان آلمینیومی می پیچند و پسمانده آن را مچاله می کنند و دور می اندازند. دو هزار سال قبل، زمانی که مردم حوضه مدیترانه دوچار خشکی پوست می شدند، دست های خود را با روغن زیتون چرب می کردند. امروز مردم از قوطی های حاوی کرم دست استفاده می کنند. تقریبا تمام عناصر موجود در این کرم دست در طی دو قرن گذشته اختراع یا کشف شدند. در جنگ جهانی اول آلمان تحت محاصره بود و از نظر مواد خام به شدت در مزیقه. به خصوص از نظر شوره که از اجزاء مهم در ساخت باروت و دیگر مواد انفجاری بود. مهمترین ذخایر شوره در شیلی و هند بود و در آلمان اصلاً وجود نداشت. درست است که میشد از آمونیاک به جای شوره استفاده کرد ولی تولید آن گران بود. ناگهان بخت با آلمانی‌ها یار شد و یک شیمیدان یهودی به نام فریدز هابر در سال 1908 فراینده تولید آمونیاک از هوای رقیق را کشف کرد. وقتی جنگ در گرفت آلمانی‌ها از کشف هابر استفاده کردند و با استفاده از هوا به عنوان ماده خام به تولید صنعتی مواد انفجاری پرداختند. بعضی محققین معتقدند که اگر کشف هابر نبود آلمان مدت‌ها قبل از نوامبر 1918 تصنیم می می‌شد این کشف برای هابر که در طی جنگ پیشگام استفاده از گاز سمی در نبرد بود جایزه نوبل سال 1918 را برمی‌قان آورد البته در شیمی نه در صلح زندگی روی تصم نقاله انقلاب صنعتی ترکیب بی سابقه ای از انرژی و مواد خام ارزان را در اختیار انسان ها گذاشت که به انفجاری در تولیدات انسانی انجامید. این رشد انفجاری تولید قبل از هر چیز در کشاورزی بود. معمولا وقتی ما به انقلاب صنعتی فکر می‌کنیم، کشماندازه فضای شهری مملو از های پردود یا رنج کارگران معدن استثمار شده که در اعماق زمین عرق میریزند در نظرمان می‌آید. اما انقلاب صنعتی قبل از هر چیز یک انقلاب کشاورزی دوم بود. روش‌های تولیدی صنعتی در طی 200 ساله اخیر ستون اصلی کشاورزی شد. ماشین های نظیر تراکتور وظایفی را به عهده گرفتند که تا پیش از این توسط نیروی بازو انجام میشد، و یا اصلاً انجام نمیشد. مزارع و حیوانات به کمک کودهای مصنوعی، حشره‌کش‌های صنعتی و زرادخانه کاملی از هورمون و دارو به باروری شگفت‌انگیزی رسیدند. یخچالها کشتی‌ها و هواپیماها این امکان را فراهم کردند تا بتوان محصولات را برای ماه‌ها ذخیره کرد و سریع و ارزان به عقصا جهان منتقل کرد اروپاییان شروع به خوردن گوشت گاو آرژانتینی تازه و سوشی ژاپنی کردند حتی گیاهان و حیوانات هم مکانیزه شدند همزمان با اینکه ادیان انسانگرا انسان خردمند را به عرش اعلی می‌رساندند. دیگر به حیوانات دامداری ها به چشم موجوداتی زنده که درد و رنج و اندوه را حس می کنند نگاه نمی و با آنها مثل ماشین رفتار می کردند. امروز این حیوانات اغلب به تعداد انبوه در محیطهایی تکثیر می شوند که به کارخانه چه دارند و بدنشان در تناسب با نیازهای صنعتی شکل می گیرد. آنها همه عمر خود را همچون چرخدنده های یک خط تولید قول پیکر سپری می کنند و طول عمر و کیفیت زندگیشان توسط سود و زرر شرکت های تجاری تعیین می شود. حتی وقتی که صنایع به زنده نگه داشتن و تغذیه و سلامتشان توجه نشان می دهند، کوچکترین علاقه باطنی به نیازهای روانی و اجتماعی آنها نمی شود، به جز در مواردی که این عوامل نقش مستقیمی در تولید داشته باشند. برای مثال مرغ‌های تخم‌ده نیازها و انگیزه های رفتاری پیچیده‌ای دارند. آنها به کاویدن محیط زندگی خود و یافتن غذا و نکزدن، تعیین نظم اجتماعی خود، ساختن آشیانه و آراستن خود نیاز شدیدی دارند. اما صنعت تولید تخم مرغ اغلب مرغها را در قفسهای بسیار کوچکی حبس می کند و غیر معمول هم نیست که چهار مرغ را در یک قفس بچپانند که هر مرغ در آن فضایی در حدود 25 در 22سانتی مربع داشته باشد. مرغها اندازه کافی غذا دریافت می کنند، اما فاقد امکان تعیین قلم خود درست کردن آشیانه یا شرکت در دیگر فعالیت های طبیعی خود هستند. نفس در واقع به قدری کوچکند که مرغها اغلب حتی قادر نیستند بالهایشان را باز کنند و به طور کامل قامت راست کنند. خوکها بعد از میمون های انسان نما جز با ترین و کنجکافترین پستانداران هستند اما در دامداری های پرورش خوک به طور منظم در محفظه محبوس می شوند که در آن حتی قادر به پهلو به پهلو شدن هم نیستند. چه برسد به راه رفتن و کابوش محیط برای جستجوی خوراک. خوک ها پس از زایمان تا چهار هفته در چنین قفسهای خفقاناوری زندانی هستند. بعد فرزندانشان را از آنها جدا می کنند تا پروارشان کنند. سپس این خوک های ماده را یک بار دیگر از طریق لقاه مصنوعی آبستن می کنند. بسیاری از گاوهای شیرده هم تقریبا همه عمر خود را در درون یک محفظه کوچک در ادرار و مدفوع خود زندگی می کنند. این گاوها ها مقادیر معینی غذا، هورمون و دارو از مجموعی از ماشین ها دریافت می کنند و هر چند ساعت یک بار توسط دستگاه های دیگری دوشیده می شوند. گاوها در لابلای این دستگاه ها تا حد یک دهان که مواد خام دریافت می کنند و یک پستان که شیر تولید می تنزل تن می این رفتار ماشینی با این موجودات زنده که دارای دنیای حسی ای هستند نه تنها موجب ناخوشیهای جسمی پیچیدهی می شوند بلکه تنش اجتماعی و احساس درماندگی و ناخرسندی روانی زیادی در آنها ایجاد می کند. درست همانطور که تجارت بردگان مناطق اقیانوس اطلس به دلیل نفرت به آفریقای ها نبود، صنعت نوین پرورش حیوانات هم به دلیل نفرت از حیوانات برپا نشده و این هم ناشی از بی است. اغلب افرادی که تخم مرغ، شیر و گوشت تولید و مصرف می‌کنند، معمولاً تأمل نمی‌کنند تا به سرنوشت مرغها، گاوها یا خوکها بیاندیشند. و آنهایی هم که به این چیزها فکر می‌کنند می‌گویند میان این موجودات زنده و ماشین‌های بیجان که فاقد احساسات و عواطف و توانایی تجربه درد هستند، به واقع تفاوت زیادی وجود ندارد. از غذا همان اره های علمی که دستگاه تولید شیر و تخم مرغ و گوشت را طراحی می کنند در سالهای اخیر نشان دادهاند که پستانداران و پرندگان بیتردید دارای ساختارهای حسی و عاطفی پیچیده هستند و نه تنها دردهای جسمی را حس می کنند بلکه دچار اندوه و ناراحتی عاطفی هم میشوند. روانشناسی تکاملی بر این باور است که نیازهای عاطفی و اجتماعی حیوانات دامداری ها در طبیعت وحش تکامل یافته زیرا برای بقا و تداوم نسلشان اهمیت حیاتی داشته. مثلا گاو ماده وحشی باید می‌دانست که چطور با دیگر گاوهای نر رابطه نزدیک برقرار کند در غیر این صورت امکان بقا و بازتولید خود را نداشت. قانون تکامل برای آموختن مهارت‌های تازه در ها، همچون در تمامی پستانداران اجتماعی دیگر، میل شدید بازی کردن را ایجاد کرد. بازی کردن فرصتی است که پستانداران در آن رفتار اجتماعی را می‌آموزند. و همچنین، میل شدید پیوند با مادر را در گوساله ایجاد کرد زیرا به شیر و مراقبت آنها وابسته است. حال چه اتفاقی خواهد افتاد اگر دامداران یک گوساله کوچک را از مادرش جدا کنند و او را در یک قفس محبوس کنند، به او آب و غذا بدهند و او را در مقابل امراض واکسینه کنند و وقتی به اندازه کافی بزرگ شد، اسپرم گاو نری را وارد بدنش کنند. از یک زاویه عینی، این گوساله برای بقا و بازتولید خود دیگر نه به رابطه مادری نیاز دارد و نه به همبازی اما از یک زاویه ذهنی گوساله هنوز میل شدیدی برای رابطه با مادر و بازی با دیگر ها دارد. اگر این امیال برآورده نشوند، گوساله رنج عاطفی بسیار شدیدی را متحمل می‌شود. درس پایه روانشناسی تکاملی همین است. یک نیاز شکل گرفته در حیات وحش، کماکان از نظر روحی احساس خواهد شد، حتی اگر در عمل برای بقا و با سولید نیازی به آن نباشد. فاجعه دامپوری صنعتی در این است که توجه زیادی به نیازهای مادی حیوانات نشان میدهد در حالی که نیازهای روحی آنها را کاملا نادیده میگیرد. صحت این نظریه حداقل از دهه 1950 زمانی که روانشناس آمریکایی هری هارلو روی رفتار میمون‌ها تحقیق می کرد نشان داده شد. هارلو میمونهای نوزاد را چند ساعت بعد از تولد از مادرشان جدا میکرد و آنها را تنها در قفصی همراه با مادری مصنوعی پرورش میداد. هارلو در هر قفص دو مادر مصنوعی قرار میداد. یکی از مادرها از سیمهای فلزی ساخته شده بود و مجهز به یک بطری شیر بود و نوزاد میتوانست از آن شیر بمکد. دیگری از چوب ساخته شده بود و ملبس به لباس بود و شباهت بیشتری به میمون مادر داشت اما هیچ ماده غذایی به نوزاد نمیداد. فرض بر این بود که میمون نوزاد خود را به مادر فلزی شیرده بچسبانند، نه به مادر پارچهی فاقد امکان تغذیه. اما برخلاف انتظار هارلو میمون ها تمایل آشکاری به مادر پارچهی نشان دادند و بیشترین وقت را با او سپری می کردند. وقتی دو مادر در کنار هم قرار داده شدند، نوزادان حتی وقتی که دست پیش می بردند، تا از مادر فلزی شیر بمکند، خود را به مادر پارچهای می چسباندند. هارلو حد زد که شاید نوزادان به دلیل احساس سرما به مادر پارچهی گرایش نشان می‌دهند. پس لامپی را در مادر فلزی کار گذاشت که ایجاد گرما می‌کرد. اما اغلب میمون به جز آنهایی که بسیار جوانتر بودند کماکان مادر پارچه را ترجیح می‌دادند. تحقیقات بعدی نشان داد که میمونهای بیمادر هارلو علا برخورداری از تقصیه لازم و کافی بعد از رشد، با مشکلات عاطفی بزرگی روبرو بودند. آنها هرگز نتوانستند خود را با جامعه میمونها هماهنگ کنند در معاشرت با میمونهای دیگر دچار اشکال میشدند و به شدت دچار استراب و پرخاشگری بودند نتیجه انکارناپذیر تحقیقات این بود میمونها نیازهای روانی و امیالی دارند که شدیدتر از نیازهای مادی آنهاست و اگر برآورده نشود رنج بسیاری خواهند برد میمونهای های کوچک هارلو ترجیح دادند تا اوقات خود را نزد مادر پارچه ای بی بگذرانند زیرا نیازمند پیوند عاطفی بودند نه فقط شیر. تحقیقات بیشماری که در سالهای بعد به عمل آمد نشان داد که این نتیجه نه تنها در مورد میمون ها بلکه در مورد دیگر پستانداران و پرندگان هم صدق می کند. در حال حاضر میلیون‌ها حیوان دامداری ها محکوم به تحمل شرایط مشابه با میمون های هارلو هستند زیرا دامداران به طور معمول گوساله‌ها و دیگر نوزادان حیوانات را از مادرانشان جدا می کنند و در انزوا پرورش می دهند. در مجموع امروز ده میلیارد حیوان در دامداری ها زندگی می کنند که بخشی از خط تولید ماشینی هستند و در حدود پنجاه میلیارد از آنها سالانه کشته می شوند. این روش های صنعتی دامداری به افزایش بی سابقه تولیدات کشاورزی و ذخیره غذایی انسانی انجامیده. پرورش صنعتی حیوانات همراه با مکانیز شدن کشت گیاهان پایه کل نظام اقتصادی و اجتماعی نوین است قبل از صنعتی شدن کشاورزی، بیشتر غذای تولید شده برای خوراک کشاورزان و حیوانات مزارع هدر میرفت و تنها درصد کوچکی از آن در اختیار صنعتگران، معلمین، کشیشان و کارمندان اداری قرار می گرفت. در نتیجه در اکثر جوامع، دهقانان بیش از 90 درصد از کل جمعیت را تشکیل میدادند. به دنبال صنعتی شدن کشاورزی شمار رو به کاهش کشاورز برای تامین خوراک تعداد رو به افزایش کارمندان و کارگران کارگاه ها کافی بود امروزه در امریکا تنها دو درصد از مردم زندگی خود را از راه کشاورزی می گذرانند اما همین دو درصد به قدری محصول تولید می کنند که نه تنها تمام جمعیت امریکا را می میکند بلکه مازاد آن را به اقصا نقاط جهان هم صادر میکند انقلاب صنعتی شهری هرگز نمیتوانست بدون صنعتی شدن کشاورزی متحقق شود زیرا دست و مغز کافی برای گرداندن کارخانجات و ادارات وجود نداشت از آنجا که این کارخانه‌ها و ادارات میلیاردها دست و مغز را که از کار در مزارع فارغ شده بودند در خود جذب کردند موج بی ای از کالا در مسیر تولید افتاد انسان اکنون فولاد بسیار بیشتری تولید می‌کند، لباس‌های بیشتری میدوزد و ساختمان‌های بیشتری می‌سازد. علاوه بر این، شماری نجومی از اقلام مختلف کالاهای جدید به بازار عرضه می‌شود که تا پیش از این قابل تصور نبود. مثل لامپ، تلفن همراه، دوربین و ماشین ظرفشویی. برای اولین بار در تاریخ، عرضه بر تقاضا پیشی گرفت. و پس از این یک مشکل کاملا جدید زاده شد. چه کسی قرار است همه این کالاها را بخرد؟ اصر خرید اگر اقتصاد کاپیتالیستی نوین بخواهد به بقای خود ادامه دهد باید مداومما تولید را افزایش دهد، مثل کوسه ای که یا باید شنا کند یا خفه شود. اما تنها تولید کافی نیست، کسانی هم باید وجود داشته باشند تا این تولیدات را بخرند وگرنه صاحبان صنایع و سرمایه گذاران ورشکست خواهند شد. برای جلوگیری از این فاجعه و اطمینان از اینکه مردم همیشه هر چیز جدیدی را که صنعت تولید می کند بخرند، نوع جدیدی از اخلاق ظهور کرد. مصرفگرایی. اکثر مردم در طول تاریخ در وضعیت کمیابی زندگی کردند. به این دلیل قناعت یک مفهوم کلیدی بود. اصول اخلاقی خشک پیورتن و اسپارت دو نمونه شناخته شده هستند. یک فرد خوب از تجمل پرهیز می کند. هرگز غذا را دور نمی ریزد و به جای آنکه شلوار جدید بخرد شلوارش را وصله می کند. تنها شاهان و اشراف به خود اجازه میدادند این ارزش را رسما انکار کنند و آشکار به داراییشان ببالند. مصرفگرایی مصرف هرچه بیشتر بیشتر کالاها و خدمات را تقدیس میکند و مردم را تشویق میکند تا با افراد در مصرف به خود لذت بدهند، خود را در آن غرق کنند و حتی خود را به آرامی در دریای مصرف خفه کنند. صرف جویی یک بیماری است که باید درمان شود. کسی لازم نیست جستجوی زیادی بکند تا نمود اخلاق مصرفی را ببیند کافی است پشت یک بسته بندی ذرت را بخوانید در زیر نقلی از یک قوطی ذرت سبانه مورد علاقه من میآید که توسط کارخانه ی اسرائیلی تلما تولید شده نوشته گاهی نیاز به چیزی بسیار خوشمزه دارید گاهی نیاز به انرژی مضاعف دارید گاهی لحظاتی وجود دارد که حواستان به وزنتان است و گاهی هم چیزی حوض می کنید. همین الان، تلما مجموعه از ذرت خوشمزه به شما تقدیم می کند. بچش پشیمان نمیشوی روی همان بسته تبلیغ دیگری وجود دارد که نوع دیگری از تولید خود را معرفی می کند Health Treats چند نوع ذرت و میوه و آجین را به شما تقدیم می کند که مزه لذت و سلامت را در هم آمیخته خوراکی لذت بخش برای وسط روز و مناسب برای زندگی سالم چیزی بسیار لذت بخش با تعمی شگفتانگیز چنین متن تبلیغی در تیه بخش اعظمی از تاریخ بیشتر به جای اینکه جذابیتی برای مردم داشته باشد دافع ایجاد میکرد آنها بر آن برچسب خودخواهانه، منحت و زوال اخلاقی میزدند مصرفگرایی با کمک روانشناسی آمیانه این کار را بکن، سخت کار کرد تا مردم را متقاعد کند که زیاد روی خوب و قناعت ظلم به خود است. مصرفگرایی موفق شده. همه ما مصرف های خوبی هستیم. ما محصولات بیشمار می خریم که در حقیقت احتیاجی به آنها نداریم و تا همین دیروز از وجودشان اطلاعی هم نداشتیم. تولید کنندگان عمدن کالاهایی با عمر کوتاه تولید می کنند و های جدید و غیر ضروری ابدا می کنند تا بتوانند ما را در هیطه خرید مداوم حفظ کنند خرید به یک سرگرمی مورد علاقه تبدیل شده و مصرف کالا یک رکن اساسی در روابط خانوادگی میان همسران و دوستان شده تعطیلات مذهبی مثل کریسمس به فستیوال خرید بدل شده در آمریکا حتی روز یاد بود یاد بود برای آنهایی که در عملیات نظامی کشته شدهاند به فرصتی برای خریدهای ویژه تبدیل شده. اکثر مردم به این روز با خرید کردن ارج میگذارند شاید برای اینکه نشان دهند که حافظان آزادی بیهوده نموردند. شکوفایی اخلاق مصرفی به آشکارترین شکل در بازار مواد غذایی خود را نشان میدهد. جوامع سنتی کشاورزی در سایه وحشت قهطی زندگی می کردند. در جامعه رفاه امروزی یکی از مشکلات اصلی سلامت چاقیست است که فقرارا را که شکم خود را انباشته از همبرگر و پیتزا می کنند حتی بیشتر از ثروتمندان که سالاد ارگانیک و معجون میوه تناول می کنند تهدید می کنند. پولی که جمعیت آمریکا هر ساله روی رژیم لاغری می‌گذارد، از میزان پولی که برای سیر کردن تمام گرسنگان دنیا لازم است بیشتر است. چاقی یک دستاورد مضاعف برای مصرفگرایی برمقان آورده. به جای مصرف غذای کم که باعث انقباض اقتصاد جامعه می‌شود، مردم بسیار زیاد می‌خورند و همزمان محصولات و خدمات رژیم لاغری میخرند که باعث رشد مضاعف اقتصادی می‌شود. چطور میتوانیم اخلاق مصرفگرایی را در اخلاق کاپیتالیستی تجارت خصوصی بگنجانیم که میگوید سود نباید مصرف شود بلکه باید در تولید سرمایهگذاری شود؟ جواب ساده است همچون در دوران پیشین امروزه یک تقسیم کار میان بالاستی ها و توده ها وجود دارد در اروپای قرون وسطا اشراف پول خود را بدون ملاحظه صرف تجملات گذاف میکردند در حالی که روستاییان زندگی صرف‌جویانه داشتند و روی هر سکه حساب میکردند امروزه همه چیز وارونه شده ثروتمندان توجه زیادی به اداره کردن داراییها و سرمایهگذاری هایشان می کنند در حالی که کمپولها برای خرید خودرو، تلویزیون و بسیاری ابزار و ادواتی که واقعا به آنها نیاز ندارند خود را مقروز می کنند. اخلاق کاپیتالیستی و اخلاق مصرفگرایانه دو روی یک سکه و ادغامی از این دو فرمان هستند. فرمان عالی خطاب به ثروتمند این است که سرمایی گذاری کن و فرمان عالی خطاب به همه ما این است که بخر. اخلاق کاپیتالیست مصرفگره از ظاویه دیگری انقلابی است. اکثر نظام های اخلاقی پیشین معامله دشواری را به مردم عرضه می کردند. به مردم وعده بهشت داده میشد، اما فقط اگر بذر شفقت و شکیبایی می کاشتند و بر و غضب فائق میآمدند، و منافع خودخواهانه خود را مهار میکردند. این برای اغلب مردم سخت بود تاریخ اخلاق قصه غم‌انگیزی است از آرمانهای اعجابانگیز که کسی از پس انجامش بر نیمده. اکثر مسیحیان عملاً از عیسی مسیح پیروی نکردند اکثر بودایان از بودا پیروی نکردند و اکثر کنفوسیوسیها موجب اوقات تلخی کنفوسیوس شدند برخلاف این امروزه اکثر مردم موفق به تحقق آرمانهای کاپیتالیستی مصرفی شدند اخلاق نوین به شرطی وعده بهشت می‌دهد که ثروتمندان حریص باقی بمانند و وقت خود را صرف به دست آوردن پول بیشتر کنند و توده‌ها به امیال و هوس‌های خود میدان بدهند و بیشتر و بیشتر بخرند این اولین دین در تاریخ است که پیروانش به آنچه از آنها خواسته می‌شود به واقع عمل می‌کنند اما چطور می‌توانیم بدانیم که واقعا به بهشت خواهیم رفت ما بهشت را در تلویزیون میبینیم.